درس هشتم خاندن بازار در گذشته در شهرها یک راه اصلی وجود داشت که اکثر مراکز تجاری و گاه تولیدی در آن قرار داشتند. رفته رفته در این راه بازار نیز به وجود آمد. واژه بازار لغتی فارسی است و به معنی محل خرید و فروش می باشد. واژگان دیگری نیز از لغت بازار مشتق شده مانند بازاری کسی که در بازار خُجره دارد و بازرگان کسی که کارش واردات و صادرات است این واژه از زبان فارسی به زبانهای دیگر نیز وارد شده است علاوه ترکیباتی با این واژه به صورت استعاری استفاده می‌شوند مانند بازار شام که به معنی محل شلوغ است در گذشته نه تنها از بازار به عنوان مرکز خرید و فروش استفاده میشد، بلکه نقش اجتماعی آن نیز بسیار مهم و مورد توجه بود و کمابیش همه فعالیت های شهری با آن مرتبط بود مسجد جامع، مدارس علمیه و کاروانسراهای متعددی در امتداد بازار وجود داشتند و بازار مرکز اخبار و شایعات بود فارسی آمیانه کتابی صادق هدایت تاریک اتومبیل ما در خونسار جلوی گاراژ مدنی نگه داشت اگرچه قرار بود که تمام شب را حرکت بکنیم ولی شوفر و همه مسافرین پیاده شدند من نگاهی به در و دیوار گاراژ و قهوه خانه انداختم که چندان مهمان نواز به نظرم نیامد بعد نزدیک اتومبیل رفتم و برای اتمام حجت به شوفر گفتم از قرار معلوم باید امشب رو اینجا اتراق بکنیم بله رابده امشب و میمونیم فردا کله سهر حرکت میکنیم. یک مرتبه دیدم شخصی که پالتو بارانی به خود پیچیده بود به طرفم آمد و با صدای آرام و خفه گفت اینجا جایی مناسب نداره اگه آشنا یا محلی برای خودتون در نظر نگرفتین ممکنه بیاین منزل من خیلی متشکرم اما نمیخوام اسباب زحمت بشم من از تاروف بدم میاد من نه شما رو میشناسم و نمیخوام منتی سرتون بذارم چون از وقتی که اتاقی به سلیقه خودم ساختم اتاق سابقم بی مصرف افتاده فقط گمون میکنم از قهوه خونه راحت تر باشه لحن ساده بیرو در بایستی و تعارف و تکلف او در من اثر کرد و فهمیدم که با یک نفر آدم معمولی سر و کار ندارم گفتم خیلی خوب حاضرم و بدون تردید دنبالش افتادم او یک چراغ برق دستی از جیبش در آورد و روشن کرد یک ستون روشنایی تند زننده جلوی پای ما افتاد از چند کوچه پست و بلند از میان دیوارهای گلی رد شدیم. همه جا ساکت و آرام بود یک جور آرامش و کرختی در آدم نفوذ می کرد صدای آب می آمد و نسیم خونکی که از روی درختان می گذشت به صورت ما می چراغ دو سه تا خانه از دور سوسو می زد. مدتی گذشت در سکوز حرکت می کردیم من برای اینکه رفیق ناشناسم را به صحبت بیاورم گفتم اینجا باید شهر قشنگی باشه بیشتر بدانیم فرهنگ آمیانه مردم ایران در کتاب فرهنگ آمیانه مردم ایران صادق هدایت در مورد برخی از امامزادهها و زیارتگاههای شهرستانهای ایران تحت عنوان جاها و چیزهای معروف مطالبی یادداشت کرده است خیلیها در زمان هدایت و شاید حتی امروز باور داشتند که این اماکن دارای ویژگیهای فوقالعادهای است و برای رفع مشکلاتشان از این ها دیدن میکردند خاتون قیامت در شیراز دخترها برای اینکه بختشان باز بشود میروند در خاتون قیامت و دور هاون سنگی که در میان آن بناست میگردند شیخ بهایی در اصفهان حمامی معروف است که شیخ بهایی طوری ساخته که با یک شمع گرم می شود شب چهارشنبه دخترها برای اینکه بختشان باز بشود و زنها برای سفیدبختی با جام چهل کلید آب آن را رو روی سرشان می‌ریزند قبر پیر پاردوز. در اسفهان است و به دیوار واقع شده. کسانی که مراد می‌طلبند سنگ‌های آنجاست که روی قبر می‌سایند، اگر آن سنگ به سنگ قبر چسبید مرادشان داده خواهد شد و گره از کارشان برداشته می شود. تاق علی محلیست نزدیک کرمان در بالای کوه که یا علی بزرگ در سنگ حک شده. پایین کوه چشمه است و درخت کوهنی در آنجاست که با آن قندیل آویزان کردند و دخیل بستند. معروف است که علی آمده از آنجا بگذرد با شمشیرش کوه را از میان دونیم کرده. ایران را بهتر بشناسیم. بازار سنتی یک بازار سنتی در فضای آزاد. سنفای گوناگون در قسمتهای مختلف بازار مشغول به کار هستند. هر مغازه در بازار را یک حجره می‌گویند. بازار را مغز اقتصاد جامعه می دانند. بازارهای سنتی را در همه شهرهای بزرگ خاورمیانه و از جمله ایران می توان یافت. این گونه مراکز خرید بیشتر در محله های قدیمی و شلوغ شهر قرار دارند. امروزه مراکز خرید مدرن در جاهای مختلف شهر ساخته شدهاند که رنگ و بوی بازارهای سنتی را ندارند.